فصل دکتر بویر هم باید یکی از چهرههای گریزانان آن دوران باشد نمیدانم هنوز زنده است یا نه شاید با اسمی دیگر در یکی از شهرستانها شاگردهای جدیدی دست و پا کرده دیشب خاطره این مرد چنان خنده انداخت که به سختی جلوی خودم را گرفتم آیا واقعا وجود داشت؟ یا کمخوابی و عادت غذا نخوردن و مصرف داروهای مزر باعث این توهم شده بود. نه، جزئیات و سر زیادی ثابت می کردند آن زمان دکتر بویر نامی نشستهایش را به طور منظم توی کافای منطقه چهارده برپا میکرد. چند ماه قبل از تصادف راه ما به هم رسیده بود. باید اعتراف کنم توی بیمارستان مرکزی وقتی بند سیاه را روی صورتم گذاشتند تا اتر را بالا بکشم و بخوابم به بوویر فکر کرده بودم آن هم به خاطر لقب دکتر نمیدانم این لقب از کجا آمده بود درجه دانشگاهی داشت یا تحصیلات پزشکی را گذرانده بود گمانم بوویر از این ابهام استفاده می کرد تا ترقین کند آموزشش حوزه های وسیعی از جمله علم پزشکی را دربر می گیرد اولین باری که دیدمش اطراف منپارناس و محل برگزاری جلسه هایش نبود بلکه آن طرف پاریس در ساحل سمت راست بود درست نپش خیابان پیگال و دوه توی کافهی به اسم لوسانسوسی باید توضیح بدهم آنجا چه کار می کردم. حتی اگر بنا باشد یک روز طولانی را صرف این موضوع کنم من به پیروی از نویسنده فرانسوی به اسم ناظر شبانه به بعضی از محلهای پاریس سرک می‌کشیدم. شبها وسط خیابان احساس می دارم زندگی دیگری را تجربه می کنم که از اولی جذاب تر است یا بهتر بگویم حس می‌کردم زندگی رویایی هم است. سمستان بود و حدود ساعت هشت شب. جمعیت زیادی برم نبود. زن و مردی که سر یکی از میزها نشسته بودند توجه هم را جلب کردند. مرد با موهای کوتاه و نقرهیش شهر نشان می‌داد. صورت استخانی و چشمهای روشنی داشت. بارانیش را در نیاورده بود. زن که بور بود و همسن و ساله او سفید و رنگ پریده به نظر می‌آمد ولی جدی بودن در چینهای صورتش موج می‌زد. با صدایی کلفت و تقریبا مردانه صحبت می‌کرد. چند جمله از حرفایش به گوشم خورد حرف زدنش به قدری واضح بود که انگار داشت از روی نوشته می‌خاند نمیدانم رفتارش چطور بود که با محله پیگال آن زمان جور در درمیآمد بله اول حد زدم این زوج مالک یکی از کابارایی آن اطراف است اگر بخواهم دقیقتر بگویم فکر کردم مالک فقط زن است و مرد باید یک آدم بازنشسته باشد داشت به حرفای زن گوش میداد. از جیبش چوب سیگاری درآورد. از افادهش در بردن چوب سیگار به دهان و جن میدن آهسته چانش جا خوردم بعد از مدتی زن بلند شد و با صدای زنگدارش دارش شمرده شمرده گفت دفعه یه بعد فکر خرج و مخارجم رو میکنید. این جمله حس کنچگاویم را تحریک کرد با لحن خشک و کم و بیش تحقیر گفته بود و مرد سرش را با فرمون برداری فکان می داد. بعد زن با قدمهایی مسمم و بدونان که پشت سرش را نگاه کند، از کافه بیرون زد. مرد دلخور به نظر می رسید. با نگاهم زن را تعقیب کردم. بارانی پوست پوشیده بود. از پیاد روی دست چپ وارد خیابان ویکتور ماسه شد. با خودم گفتم، حتما به تابارن می رود. نه. ناپدید شده بود یعنی کمی پایین به هتل رفته بود به هر حال ممکن بود مدیر هتل باشد شاید هم کاباره یا عطرسازی. مرد همونجا خوشکش زده بود سرش را پایین انداخته و به فکر فرو رفته بود چوب سیگار از گوشه لبش آویزان بود انگار تازه سیلی خورده بود زیر نور محتابی صورتش را یک لایه عرق و یک جور چربی قلیز پوشانده بود. معمولاً این حالت را در مردهایی می دیدم که زنها عذیتشان می کند. او هم بلند شد. قد کشیده ای داشت و پشتش کمی خم بود. از پشت شیشه می دیدم که مثل خوابگردها از خیابان پیگال پایین می رود. این اولین برخوردم با دکتر بویر بود. بار دوم، تقریبا ده روز بعد در کافی دیگری نزدیک دانفر روشرو رو دیدمش پاریس شهر بزرگی است، ولی فکر می کنم بشود یک نفر را چند بار دید آن هم در جاهایی که سختتر به نظر می رسد توی مترو بلوارها یک دو سه بار انگار تقدیر یا تصادف سماجت می کند و می خواهد ملاقاتی ترتیب دهد و زندگیتان را سمت مسیر تازهی هدایت کند ولی معمولاً شما به این ندا جواب نمی دهید. از کنار آن چهره میگذرید. او برای همیشه ناشناس میماند و شما هم احساس آرامش میکنید و هم سرزنش. وارد کافه شده بودم که سیگار بخرم. جلوی پیشخان صف بسته بودند. ساعت آونگدار تای کافه هفت شب را نشان میداد. پایین ساعت، پشت میز، وسط نیمکتی که روکش چرم قرمز داشت، بویر را به جا آوردم. ادهی دورش کرده و همه ی را گرفته بودند. بویر تنها روی نیمکت نشسته بود، انگار جای راحت فقط حق او بود. چربی و عرق از صورتش مف شده بود و دیگر چوب سیگار از گوشه لبش آویزان نبود. او آن مرد قبلی نبود. این بار داشت حرف میزد حتی به نظر میآمد در حال سخنرانی است و دیگران با دقت به حرفهایش گوش میدهند. یکی از آنها در دفتر مشق بزرگش یادداشت برداری میکرد. دختر او پسر: نمیدانم چرا آن شب کنجکاف شده بودم به این سوال جواب بدهم. چطور ممکن است مردی تا این اندازه عوض شود؟ چطور آن مرد در پیگال؟ تبدیل شده بود به این مرد در دانفر روشرو. همیشه نسبت به اسرار پاریس خیلی حساس بودم تصمیم گرفتم نزدیک میز کناری آنها روی نیمکت بنشینم تا به بویر نزدیکتر باشم دیدم همگی گی قهفه نوشیدند من هم قهوه سفارش دادم حواسه هیچ کدامشان به من نبود وقتی میز را کشیدم بویر حرفش را قطع نکرد به پایه گیر کرده بودم و روی نیمکت افتادم، درست کنارش. سر تا پا گوش شده بودم. اما حرفهایش را خوب نمیفهمیدم. معنای بعضی از کلمه که استفاده میکرد با معنای همیشگیشان فرق داشت. از اینکه می دیدم تا تا چقدر بر شنودههایش تسلط دارد تعجب کردم. همگی غرق صحبتهایش بودند و یارویی که دفتر مشق بزرگی داشت، مثل تون نویس ها مدام یاد داشت میگرد گاه با تذکرای نامفهومی که مثل رمز عبور مجبور بود مدام تکرار کند خنده آنها را در می آورد اگر حالش را داشته باشم سعی می کنم راه و روش خاص آموزشش را یاد بیاورم حواسم به واژههایی که به کار میبرد نبود نه باستابی داشتند و نه درخشان بودند تنینشان در ذهنم مثل نوت‌های ارگی قدیمی کشیده و غمنگیز شدند وانگهی حالا که دیگر صدای دکتر بویر نمیتواند بهشان ارزش بدهد فقط واجه های ای باقی ماندند که فهمیدن معناشان برایم سخت است گمانم بویر آنها را کم و بیش از روانکاوی و فلسفه خاور دور به آریت میگرفت ولی میخوا در حوزه هایی که برایم ناشناختهاند اظهار نظر کنم. بالاخره سمتم برگشت و متوجه حضورم شد. اول مرا رو نمی دید. ولی بعد در حالی که چشم به من دوخته بود از شنودههایش سؤالی کرد مثل این. میفهمین چی میگم؟ آن لحظه احساس کردم من هم یکی از اعضای این گروه شدم از خودم پرسیدم، یعنی به نظر بویر من با بقیه فرق دارم. مطمئن بودم توی آن کافه و دور همان میز شنوانده عوض می و اگرچه مشتی سرسه دارد یک درجه نزیدیتر ولی قطعاً هر شب هفته چند گروه هستند که جای هم را می با خودم می گفتم حتما همه این غیافه ها و همه این گروه ها را با هم قاطی می کند. یکی بیشتر یکی کمتر. از طرفی گهگاه به نظر می با خودش حرف می زند مثل اونر پیشهی که جلوی جمعیت مونولوگ می گوید وقتی احساس می کرد همه ی به اوست هوا را چنان محکم از چوب سیگارش بالا می که گناه گود می و بعد بدونان که دود را بیرون بدهد، چند ثانیه مکس می کرد تا ببیند همه چشم لبهایش دوختند یا نه آن شب تقریبا آخر جلسه رسیده بودم بعد از یک روب ساکت شد. کیف باریک و سیایی را گذاشت روی زانوهایش. از آن های شکی که مردم از چرمسازی های بزرگ هومه سنت اونوره می خرند. از داخلش دفترچه یادداشتی بیرون آورد که با چرم قرمز صحافی شده بود. و رق زد. به پسری که قیافهای شبیه قرغی داشت و از همه به او نزدیکتر بود گفت جمعه بعد ساعت هشت زیر پسر در دفترچه جیبیش یادداشت داشت کرد در نگاه اول فکر کردم باید منشیش باشد حد زدم مسئول فرستادن دعوت نامه هاست. با باویر بلند شد و دوباره رو به من کرد لبخند می زد. شاید برای اینکه تشویقم تشفیقم کند تا از آن به بعد در جلسه ها شرکت کنم به عنوان مستمع آزاد بقیه با یک حرکت از جا بلند شدند رفتنشان را دنبال کردم بیرون توی میدان دانفر روشرو وسط گروه ایستاده بود و با تک تکشان حرف میزد. درست مثل استادهای فلسفه که کمی بی و عادت دارند بعد از کلاس مدت زیادی از وقتشان را با شاگردهای مورد علاقشان بگذرانند و چیزی بنوشند من هم توی گروه بودم. او را تا اتومبیلش همراهی کردند. دختر بوری که صورت لاغر و جدیش را دیده بودم کنارش راه می رفت و به نظر می آمد بویر با, با او خودمانی تر است. بارانیش هم رنگ بارانی زنی بود که در پیگال دیدم ولی بارانی اینگکی پوست نداشت. آن شب هوا سرد بود. لحظه ای با بویر بازویش را گرفت. به نظر نمیرسید دیگران تعجب کرده باشند جلو ماشین که رسیدند دوباره حرفهایی رد و بدل شد من کمی دورتر ایستاده بودم بردن چوبسیگار به دهانش مثل آن حرکتی که در پیگال انجام داد و توجهم را جلب کرد با عدا و اطفار همراه نبود برعکس چوبسیگار به او حالت نظامی ها را میداد اعضایی ستا دورش حلقه زده بودند و او آخرین توصیه ها را بهشان گوش زد می کرد. دختر بور بارانی پوش به قدری نزدیکش بود که شانه هایشان به هم می خورد کم کم خیافش جدی تر شده بود و انگار می خواست دیگران را دور نگه دارد و با آنها نشان دهد جایگاه ویژه ای نزده دارد او با با سوار ماشین شد و در را بست بویر سمت شیشه خم شد دست داد و با گروه خداحافظی کرد ولی چون لحظه با نگاه روشنش به من خیره شده بود خیال کردم فقط با من خداحافظی میکند. لب پیاده رو بودم و سمتش خم شدم دختر با ترش روی نگاهم کرد بویر آماده می شد راه بیفتد سرم گیچ رفت دوست داشتم به شیشه بکوبم و به بویر بگویم خرج و مخارج یادتون نرفته؟ چون آن شب در پیگال این جمله خیلی کنشکاوم کرده بود افسرده بودم چون خیال میکردم این جمعه هم راضی میشود بین آن همه جمله و چهره دیگر که لحظه ای آدم را غافلگیر میکنند و بعد مثل ستاره دور در خاطرش چشمک میزنند تا روزی که مرگش از راه برسد و خاموش شوند و آن راز همچنان سربسته باقی بماند. آنجا ایستاده بودم توی پیاده رو و بین گروه. معذب بودم. نمیدانستم چه بگویم. بالاخره به پسری که قیافه غقی داشت لبخند زدم. شاید او بیشتر از بقیه میدانست. بی مقدم چینی؟ در مورد دختری که با بویر سوار ماشین شد و رفت سوال کردم بدونان که تعجب کرده باشد با صدایی آرام و گرفته جواب داد که اسمش جنویوه است جنویوه دالا